این داستان اود نقره ای روزی روزگاری پادشاهی زندگی می کرد که فرزندی نداشت. به همین دلیل به خدمت گذار و بازشکاری خودش خیلی عشق می برزید. خدمت پادشاه غیر از انجام کارای روزانه مسئول نگهداری از بازشکاری هم بود. روزی از روزا با اون پرنده که روی دستش نشسته بود از قصر خارج شد. توی چشم به هم زدن باز پرواز کرد و روی درخت بلندی نشست و خدمتگزارم هر کاری کرد نتونست پرنده رو پایین بیاره عاقبت از درخت بالا رفت و باز با دیدن اون پرواز کرد و روی برج بلندی نشست خدمتگزار دوید و دوید تا به اون برج رسید و در برج رو زد دختر زیبایی سر خودش رو از پنجره بیرون آورد و پرسید: کیه؟ کیه؟ خدمتگزار گفت: منم بانوی محترم، خدمتگزار پادشاه. یه باز شکاری از دستم رها شد و روی این برج نشست. اگه ممکنه اجازه بدید به داخل بیام و اون رو با خودم ببرم. دختر گفت: خیلی دوست دارم در رو برود باز کنم ولی متاسفانه اجازه این کار رو ندارم چون که پدرم منزل نیست. پدرم قدغن کرده که در قیابش در رو بروی کسی باز نکنم. خدمت گذار با آه و ناله ادامه داد. اگر باز شکاری مال من بود این همه اصرار نمی ولی چون مال پادشاه اگه اون رو نگیرم مورد قذاب شدیدش قرار میگیرم. دختر زیبا تحت تأثیر حرفهای مرد جوان قرار گرفت و در رو به روش باز کرد. راه پله ها رو به اون نشون داد تا به بالای برج بره. پسر جوان آهسته و آرام به سوی باز رفت و با پرشی سری اون رو توی دستش گرفت. اون وقت از دختر خداحافظی کرد و رفت. اون دختر و پسر اگرچه فقط یک بار همدیگر رو دیدن، ولی تو همون نگاه اول به هم علاقه مند شدند. پسر جوان هر شب مقابل پنجره دختر وامیستاد و با صدای گرم و خودش آواز آشقونه میخوند و دختر زیبا هم در کنار پنجره حاضر میشد و به زمزمه های پسر گوش جان میداد. یکی دو ماه بعد پادشاه بیمار شد و به توصیه پزشکان به کوهستان رفت تا بهبودی پیدا کنه خدمتگزار هم ناچار شد همراه پادشاه قصر رو ترک کنه با رفتن پادشاه و خدمتگزار دختر زیبا توی برج تنها موند و قلبش از هجران یارش پر از غم و قصه شد شبی از شبا که دختر جوون از شدت افسردگی خواب به چشمش نمیومد از اتاق خودش بیرون رفت و از این اتاق به اون اتاق و حتی به زیرزمین سرک کشید. با ترس و لرز زیاد در زیرزمین رو باز کرد. با تعجب سالن آبی رنگ مجللی رو دید که به سالن قرمز رنگی راه داشت و در ادامه به سالن سفید نقره‌ای رنگ رسید که در وسط اون حوضی پر از آب و فوارهی بلند قرار داشت و نرده زیبایی دور حوز رو گرفته بود. به نرده تکیه زد و به گریه افتاد. چند قطره از عشق چشماش توی آب چکید. تو این هنگام ناگهان از بالای فواره ابری بلند شد و از داخل ابر خانومی با لباس سفید و اودی ظاهر شد. دختر جوون، با دیدن این سحنه عجیب و غریب خیلی وحشت زده شد ولی خانوم لباس سفید آهسته و آروم و با مهربونی سرش رو تکون داد و گفت وحشت نکن چرا میترسی؟ من اومدم به تو کمک کنم میدونم که قلبت گرفته و غمگینی تو اون پسر جوان رو دوست داری خدمتگزار پادشاه رو میگم ولی علاج دردت رو نمیدونی خوب گوشوار، پادشاه خیلی بد مریض شده و این روزا توی قصر کوهستانی خودش استراحت میکنه. تمام پزشگاه میگن که کار از کار گذشته و کمک به اون بیفایده است. ولی تو این عود نقرهی ای رو بردار و برو و برای اون بنواز. مطمئن باش که صحیح و سالم میشه. اون وقت، از اون تقاضا کن که به رسیدگی کنه و تو رو به عقد خدمت گذار در بیاره. خانم لباس سفید اود نقرهی رو به دختر داد و توی چشم هم زدن ناپدید شد و رفت. اون شب دختر زیبا از تالار قرمز و آبی گذشت و به اتاق خودش رفت و آسوده و راحت تا صبح خوابید. صبح زود پدرش اون رو بیدار کرد و بهش گفت دخترم میدونی خبر جدید چیه؟ دختر گفت نه من که پام رو از این برج بیرون نمیذارم از کجا بدونم چه خبره؟ پدرش گفت خبر مهم اینه که پادشاه سخت بیمار شده و به گفته پزشگاه به زودی میمیره. دختر گفت پدر اجازه بده که من برم نزد اون تا اون رو علاج کنم. پدرش گفت ای دختر تو تو چه عالمی سیر میکنی دختر کوچولی نازم تو که میدونی بهترین دکترهای این سرزمین از انجام اون عاجز موندن دختر گفت تنها خواهشم اینه که اجازه بدید پیشش برم مطمئن باشید که سلامتی رو به اون برمیگردونم سرانجام پدر اجازه داد تا دخترش گام تو راه مداوای پادشاه بذاره دختر جوون اود ای رو برداشت و به سوی قصر کوهستانی پادشاه به راه افتاد. با رسیدن به قصر از سربازان گارد تقاضا کرد که اون رو به حضور پادشاه ببرند تا بیماریش رو علاج کنه. سربازا با سردادن خنده های تمسخرآمیز دختر جوون رو کنار زدند ولی دختر دل سرد نشد و چندین بار حرف خودش را تکرار کرد. اون گفت مگه همه سعی نکردن پادشاه رو از مرگ نجات بدن پس اجازه بدید منم سعیم رو بکنم. سرانجام ماموران گارد در برابر اصرار دختر زیبا تسلیم شدن و اون رو به کنار تخت پادشاه بردند. رنگ از رخساره پادشاه پریده بود و به سختی نفس میکشید. انگار که لحظات آخر عمرش رو می‌گذروند ولی تا صدای عود دختر زیبا رو شنید چشمش رو باز کرد و غذا خواست خدمتگزاران دربار حیرت زده و انگشت به دهان با سرعت هرچه چه تمام‌تر غذا و نوشیدنی آوردند بعد از اون حال و احوال پادشاه روز به روز بهتر شد و سلامت کامل خودش رو به دست آورد تو این وقت دستور داد دختر زیبایی که اون رو شفا داده بود رو احزار کنند. پادشاه با دیدن دختر گفت ای دختر زیبا حالا که با نقره نقرهی و سهرامیز خودت زندگی دوباره به من بخشیدی منم میخوام به رسم قدر شناسی حدیهی به تو بدم. بگو ببینم چه آرزویی تو دلت داری تا اون رو برآورده کنم. دختر زیبا سرخ شد و سرش رو پایین انداخت. پادشاه باز ادامه داد چرا سکوت میکنی؟ چرا سرخ میشی؟ ای دختر زیبا شاید نیمی از قلمرو پادشاهی من رو میخوای یا خواهان و جواهرات هستی بگو ببینم چی میخوای مطمئن باش که هر چه طلب کنی به تو میدم حرف های پادشاه تو دل دختر نشست و به خودش اجازه داد تا حرف دلش رو به زبون بیاره و بگه اون گفت ای پادشاه بزرگ من تنها و تنها خدمتگذار شما رو میخوام نه طلا و جواهرات و نه ملک و املاک پادشاه با تعجب پرسید خدمتگذار من؟ دختر زیبا گفت بله خدمتگزار شما من اون رو دوست دارم و میخوام باش ازدواج کنم این تنها آرزوی منه پادشاه با خوشحالی گفت اگر خدمتگزار هم موافق باشه من اون رو با ثروت فراوون به تو میبخشم امیدوارم که تا پایان عمرتون به خوبی و خوشی با هم زندگی کنید خدمتگزار با شنیدن این خبر از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید و فوراً موافقت خودش رو اعلام کرد دختر زیبا هم نزد پدرش رفت و داستان رو براش گفت سپس در تالار سفید عود ای رو به خانم لباس سفید برگردوند و از کمکهاش تشکر کرد هفته بعدش جشن عروسی دختر زیبا و خدمتگذار پادشاه با شکوه هرچه تمامتر در قصر سلطنتی برگزار شد و اونا تا پایان عمر به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند